بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبيائي وسيد المرشلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد كتابي أس كتابه علماء قديم خدمون درماز متقدمين إمام أجري محمد بن الحسين از عیمی بودند که در بغداد تحصیل خودشون را آغاز کردند و سپس توفیق این را پیدا می که در مکه مشغول تدریس بشن سی سال آخر حیاتشون در مکه بودن تا اینکه اونجا وفات می آبند کتابی که خواهیم خوندم شب کتاب فضل قیام اللیل کتاب و فضل قیام اللیلی و التحجد جزئی نزیب پنجاه تا حدیث و اثر از طابعین و از صحابه در این کتاب جمعوری کرده امام آجوری این ان را الله سعی میکنیم امشب با هم داشته باشیم ستایش و مدح این امام از زبان علما زیاده از جمله امام عبدالحسن بن البنا در باره امام آجوری میگوید کان امام الناصحه امامی اهل نصح بود و باری عن صالحه اهل عبادات و زهد و پرهیزگاری و کلا مهونه یرن واضحه سخن روشن واضح داشت نفعنا الله و به و جميع المسلمين ان شاء الله امام زهبی مقید كان الاجوری محدثا اثريا حسن التصانیف امام ااجوری محدثی اهل اثر بود اهل دلیل بود اهل مدرک بود مهمتا مهمترین کتابات امام ااجوری در دفاع از عقیده اهل و جماعات کتاب الشريعة کتاب الشريعة امام ااجوری ان شاء الله يكام پیرامون این مهمترین کتابی که امام آجوری نوشته یه توضیحاتی خواهیم داد این کتاب مختصری هست جزئی هست چون کم میشه تصانیف که از معلفین که بیان در یک موضوع خاصی بیان یک کتاب بینویسن احادیث را جدا بکنن معمولا کتاب جوامع، جوامعه صحاحه. ولی این یک جزئه امام آجوری و همچنین امام ابن نبی دنیا معروفن به این که در هر سنفی جز نوشتن یک جز مثلا در تحریم موسیقی در عذاب قبل، در زندگی برزخی اینجا امام ماجری احادیث و آثاری که در موضوع قیام لیل یا هم تهجد آثار را حدیثا کرده و در این جمعاوری شرطش صحت نبوده مثل کاری که امام ابوداود در کتاب سنن داشته و همچنین نبینه ماجری و دیگر علما شرطش صحت نبوده صحت و سخمش را به عهده خودمون گذاشته برید تحقیق بکنید این سنت. این حدیثی که در این باب روایت شده اگر ما بخواهیم بپردازیم به زندگی اعمه علمای همچون تبری و آجوری یک مزیت خاصی دارن همچنین عبدالله ابن بارک اینها معروفن به زهدشون به برعشون و تهجدشون و قرائتش. اینا معروف بودن ب... همونطور که زر و اصل معروف قدر زر و زرگر میدونه مثال تطبیق پیدا میکنه روی اینها اینها قدر قیام اللیل و تهجد دونستن به خاطر همین خودشون که اهل تهجد بودن امت رو هم نصح کردن که اهل تهجد باشن و کتابم تصنیف کردن برای تشویق امت و برای نصیحت به امت که اهل عبادت و طاعت باشن زیاد بودن حالا من مثال زدم مثاله مبارك موارك زلمة مثاله جرب تبري زيادة زياد مثل امام شعبه ما رأيت شعبة ركعة قط ابو قطن ما رأيت شعبة ركعة قط إلا ظننت أنه قد نسي كان يقوم الليل كله في السفر وغيره شعبه ندي دم ركوان ميكار مجا فج دم فراموش ولا قعد بين السجدين إلا ظننت أنه قد نسي بين دسجدين كيس شو بين دسجدمي جين قد سب ميكار فج ميكار دم فراموش كارد وهم من در مسافرتش در غیر مسافرت تهجد رو ها نمی همونطور که رسول صلی الله علیه و سلم در بخاری داریم تهجدش را بر روی شتر می خوند حالا بعضیا میگن که نه کنه یترو علی بعیره لما دیگه وتر وید خونده وتر همون قیام شب همون تهجده فکر نکنید وقتی گفتیم میشه کنیوتر یعنی وتر یک رکعت رسول الله صلی الله علیه و سلام وتر یک رکعت می‌خوندن سه رکعت می‌خوندن پنج رکعت با هم می‌خوندن هفت رکعت با هم می‌خوندن نو رکعت هم با هم این وتر رسول الله صلی الله علیه و سلام فرق این تعداد رکات این بود که در سه و پنج رکعت اون چیزی که در سنت اومده بر خلاف اون چیزی که رسم بعضی جاها با یک تحیات می خونن بعضی جاها با دو تحیات می خونن اگر سرکت خوندن اشتباهه در سنت اون چیزی که وارد شده سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله سرکات و پنج رو با یک تشهاد می خوندن و هفت رکعت و نه رکعت رو با دو تشهد می خوندن رکعت ششوم و هفتم اگر هفت رکعت می خوندن و اگر نه رکعت می خوندن برکت هشتم و نهم برای تشهد می نشسن این وصف نماز تهجد رسول الله صلی الله علیه و و وصف نماز وترشه احادیثی که ما در این کتاب خواهیم داشت حالا بهش خواهم برداخت بعضی ها ضعف درش هست ولی که این احادیث فکر نکنید وقتی گفته میشه ضعیف از طریق دیگر نیومده تا بالاخره خصوصا شاید مؤلف روش مطلع نبوده کسانی دیگر از علما روایت کرده یا چون اسنادش ضعیف معناش در قرآن نایمده یا در سنت در احادیث دیگر نایمده انشاءالله اینها همه در ضمن این کتاب بهش خواهیم پرداخت امام آجوری نسبش محمد ابن الحسین ابن عبدالله ابو بکر معروفه به ابو بکر آجوری آجور در لغت اهل فارس معروفه آجر مثل همون بلوک یا طوبه که در لغت عربی بهش گفته میشه ولی خب در اصطلاح خودمون آجر به اون تو به خاصی گفته میشه که زرد مانند و پخته میشه در کوره ها که رس بوده از قدیم ایام در ایران این آجر رو معروفی که ما میدونیم امام آجری به این صنعت نسبت داده شده امام آجری 96 سال تقریبا عمر کرده سال 264 هجری قمری میشه گفت تولد شده اگر ما عمرشو 96 سال بگیریم چون سال 360 فوت شده تولدش یاد نشده ولی گفته شده 96 سال عمر کرده با توجه به این میشه گفت که تولدش ولادتش بعد از وفات عمی مثل احمد بن حنبل و بخاری بوده تولدش 264 تقریبا میشه گفت ولادتش بوده اجری قمری در این سالی که امام آجوری به دنیا آمده بالاخره شاگردین امام بخاری بودن شاگردان امام محمد ابن حنبل و مسلم و خیلی از ایمه زنده بودن اون ای که عمرشون طولانی بوده شوخش زیادن مثلا یاد میشه از شیوخ ابراهیم بن موسی، احمد بن الحسن بن عبد الجبار، احمد بن سهل بن فيرزان، احمد بن يحيى و دیگر شيوخ شاگردین معروفش از مهمترین شاگردانش که اهل تصنیف بودن و خیلی مشهوره و کتاب اعتقادی هم داره امام ابو نعیم اصفهانی از مشهورترین دارن میگم امام ابو نعیم اصفهانی احمد بن عبد الله ابو نعیم الاسفهانی. الاصفهاني گفتی میشه و الاصفهاني گفته میشه همین کتاب حلیت الاولیاء رو داره صاحب کتاب حلیه الاولیاء شاگردان دیگر هم داشته مثل خلف بن القاسم و سهل بن الدباغ علی بن محمد بن عبد الله عبدالملک بن محمد و دیگران امام ماجوری چون در مکه بوده حجاجی می پیشش طلب علم میکردن مثلا این کتابی که ما داریم همین که میخونیم کتاب قیام اللیل نسخه مغربه علمایی که اومدن نزدش و خوندن و نسخه برداری کردن از کتابش بردن اونجا و این کتاب با توجه به اون مخطوط و اون نوشته های علمای مغربه که به دست ما رسیده این هم از برکت نشستن در حرم و مجبول تدریس بودنش در مکه وصف عدالتش درجه و مکانتش در علم حدیث زیاده از خنان اعمیه حديث مستختي بغدادي مجا كان ثقة صدوقا دينا سقيبوت صدوقبوت أهل ديانات الدين داريبود إمامه البهس بن مرنومي كان إماما ناصحا وورعا صالحا جفتيه ابن الجوزي مجا جمع العلم الزهد إمام زهاء مجا الإمام المحدث القدوة الإمام المحدث القدوة جويد جمي وكان عالما عاملا صاحب سنة واتباع صاحب السنه و پیروی از سنت رسول الله و سلم بود. یه جای دیگه میگه امام الحافظ الزاهد المجاور بحرم الا گفتم 30 سال فقط در حرم مکه بود. رهانه نمی‌کرد. نه تهجدش در اونجا فوت می‌شد نه نماز فرض پنج گانش. و جای دیگه امام ذهبی میگه کان الاجری محدثا اثرية. این الصلاحاتی است که امام ذهبی زیاد استفاده میکنه در باب مدح. مثلا درباره فلانی میگه کان سلفیا یعنی متبع برسول الله و قوایبن به سنت بود. کان سلفی اینجا میگه کان اثریا اهل آثار بود اهل اللي رو متركوت راه اصحاب و ياران رسول الله صلى الله عليه وسلم بود و الذين تبعوهم باحسانا رضي الله عنهم و رضوا عنه امام ابن رجب الحنبلي میگه كان من العلماء الربانيين في اوائل ال100 در صدر علمای قرن چارم قرار داره از اون علمای ربانی امام ابن رجب میگه و گفتم حالا سخنان ائمه زیاده اون چیزی که از گفته علما برمیاد اینه که ابتدای امرش مذهبی که داشته شافعی بوده هرچند که نه خودش جایی گفته من شافعی ام نه گفته هم من حنبلی ام هیچ کس هم مدرک نداره شافیا ها گفتن دین شافعیه حنبلی ها گفتن نه این حنبلیه هر کسی خاصه به خودش بچسبونه از خودش ما چیزی نداریم چون همونطور که ما زهری میگه پیرو به دلیل بود جای موافق با احمد بود جای موافق با شافعی بود جای موافق با مالک بود از جمله کسانی که گفتن شافعی بوده ابن ندیم ابن خلكان صدیق حسن خانه و دیگران مثل تقی الفاسی میگه نه حنبلی بوده اله کلن برای ما فرقی نمیکنه که در فقه پیرو چه مذهبی چه مسلکی بوده اون چیزی که برای ما مهمه این که صاحب دلیلی بود صاحب اسناد بود و این کتاب را با اسناد تا رسول الله و صحابه و یاران این کتاب را برای ما را باید کرده با اسناد خودش این برای ما مهمه برای ما مدرک مهمه قیل و قال برای ما مهم نیست در بحث اعتقادش نیازی نیست که ما بربگردیم به کتاب‌های جرح و تعدیل در مورد عقیده جستجو بکنیم تحقیق بکنیم چرا؟ چون کتابی داره که در بحث عقیده اهل سنت مادره اون زمانی که علماء در آداب در احکام نماز و تهارت می نوشتن امام و میاد کتاب الشریعه را در بحث اعتقاد می بیسه. یعنی یک جزء بزرگی که با تحقیقش الان شیش جلدی ما داریم اومده احادیسی که در بحث اعتقاده در رد بر خوارج در رد بر مرجعه در رد بر قدریه در رد بر معتزله در رد بر اشعره و دیگر فرقه ها میاد این تصنیف بزرگ این کتاب این تعلیف بزرگ را مینویسه ابتدای کتابش هم شروع میکنه باباب بابا ف ذم الخوارج اول رد بر تکفیری هام میده چون مسلمان ها، خوارج بودن همچنان هم هستن کامون که رسول الله صلی الله علیه و آله در وصف اونها میگه کلم ما خرج قرنم قطع هر شاخی بیرون میاد چه کسی میشه بلادن بود رف زرقاوی زرقاوی رف بغدادی بغدادی رف فلانی همچنان این رؤوس شر سران فتنه موجودن از همون جایی که ذل خویسرای تمیمی اومد اعتراض به رسول الله و گفت اعدل یا محمد با اون گستاخی و بدادیش تا الانی که ما هستیم همچنان این گستاخان وجود دارن این کسانی که بر ایمانی که در قلب مردم قضاوت میکنن اونجایی که اسامه اون شخص رو میکشه میگه بعد از اینکه لاله را گفت رسول الله سازنش میگه اشققت عن قلبه از صدر سینه‌شو شکفتی سینه‌شو باز کردی دیدی در قلبش اومد بود خودشو با این کلمه نجات بده یا رسول الله گفت که اشققت عن داره سینه‌شو باز کردی مگه او كما قال عليه و السلام بعد در این کتاب میاد بحث تشویق بر پایبندی به قرآن و سنت باب میگذاره في الحث على و بالكتاب و وترك البدع در رد بر بدعات باب میگذاره بعد از اون هایی در بحث ذم جدال مرا خصومت علم کلام رد بر متکلمین میده اون فرقهایی که بعد اومدن مثل معتزله اشاعره ماتریدیه کرامیه و کلابیه رد بر معتزلی میده در اون دروغشون بر اینکه قرآن مخلوقه این دارم من میگم یعنی در بحث مکانات و جایگاه این کتاب این نیازی است که ما بر بگردیم به گفتار علامه جرح و تعدیل ببینیم اعتقادش چی بوده اعتقادش پیرو سلف بودنش مثل روز روشنه آشکار و واضح صریحه ما اهل سنت چینی در عقیده مناشکاری دورنگدوری نداریم بلکه دورنگدوری را از نفاق میدونیم همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری میفرمایند اشرب الناس ذوالوجهین بدترین مردم اون دو رنگو درست با تو یه طریقه با دشمنت یه طوری دیگه است اشرب الناس ما یک وجهی داریم عقیدمون واضحه روشنه است تعارف هم با کسی نداریم ما پیرو قرآن و سنتیم و اونم سنت صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از اون دیگه میاد در کتاب شریعش درباره ایمان صحبت میکنه که اون زیاد میشه رد بر مرجعه میده رد بر قدریه میده رد بر حلولیه میده و منهج اهل سنت در باب اصما صفات رو یاد میکنه که علمای بعد از اون که اومدن چه در شام و چه در حران و چه در بغداد و چه در مصر اومدن با توجه به برداشت ها و بندی هایی که امام آجور کرده اومدن عقیده اهل سنت رو با توجه به گفته های این امام اومدن اساسیات علم عقیده رو نوشتن اصول اعتقادی اهل سنت رو نوشتن گفتم لالکائی میاد مینیویسه اصول اعتقاد اهل سنت ابن بطه میاد اکبری کتاب ال رو مینیویسه این عصر, عصر مشهوری بود به تصنیف در باب عقیده اینا کتابای مادرین با نجدی ها چیز نه 900 سال فاصله است بینشون شاید به ما بگید طبری روی ما ست بکنه به ما بگید اجری روی ما ست بکنه شما اجوریا ازی نسبت اقدمش بر اساس اعتقاد به اون اول ولی ما را هرچی خطاب بکنه آخرش ختمش اون چیزی که امام زهیدی میگه درباره اجوری اهل اثر بود ما اهل اثر رو دلیلی برای ما فرقی نمیکنه فرقی نیست بین بخاری و مسلم ابو داوود ابن ماجه فرقی نمیکنه یکی در بخارا بود یکی در سمرقند بود یکی در قزوین بود یکی در ری بود یکی در بغداد بود یکی در مصر بود و دیگری در فاس مغرب بود و دیگری در اندلس اسپانیا بود و دیگری در یمن بود حالا ما این رو ببینید صاحب تسانیفم عبدالرزاق صنعانی صاحب کتاب مصنف اهل کجاس یمانی یمنی یکیشون اهل نیشابور مسلم یکیشون اهل قذبین ابن ماجه یکیشون اهل هست یکیشون اهل سمرقند یکیشون اهل بغداد امام محمد برای ما اعجمی و عربی نداره برای ما اسناد مهمه مدرک مهمه کی اهل دلیل و مدرکه اهل حجت امام مثلا آجوری در دفاع عقیده اهل سنت کنین میگویات علامة من اراد الله عز و جل به خیرا سلوك هذه الطريق کتاب الله و سنن رسول الله صلی اللہ و سنن اصحابه علامة ان کسی که الله خیریت شخاصه فقداری من يرد الله به خیرا يفقه ف الدین فقدار دین بر اساس قرآن و سننت و سنن اصحابه ستو چیز درسته ما انا عليه اليوم واصحابي. و اصحابه فرغینا و جیچید و جیده براش رسول صلی اللہ و سلام کی هسن انها فرمودا ما انا عليه اليوم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي والصفيان الثوري والذين اتبعوا بإحسان ينقل مثل الأوزاعي صفيان الثوري مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام أبو عبيد ومن كان على مثل طريقهم ومجانبتي و پرهیز بکنید کسی که مذهب این علما را نداشته باشه برحضر باشید ره رو راه این علمای بزرگتون باشید که پیروه قرآن و سنت بودن درست در زهد و ورع کتاب دارد نوشته ولی این به این دلیل نیست چون اهل زهد و ورع بود پس صوفی بوده نه او در رد اهل تصوف سخنان واضح و سریخی دارد انکار میکنه بر مذهب حلولیه میگوید أما بعد فإني أحذر إخواني مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان هناك شيطان باشهم هن بازيزان ميكون بازيششون غرفته ان حلوليهايك ميقول فخرجوا بسوء مذهبهم عن طریق اهل که از جاده و راه اهل علم خارج شدن الى مذاهب قبیحه لا تکونو الا في مفتون نهالك شخص که دچار فتن شده فقد میبینی که راه رو راه این هاس زعمو ان الله عز وجل جل حال في كل شي الله لعنه تشون بکنه ادعا کرده که الله در همه چیز حل شده تو میاد آخر سخنانش که انجا نقل میکنه در کتاب الشریعه این کتابشه این اعتقادشه که دیگه نیاز نیست ما بر بگردیم و بگردیم که علاما داری اعتقادش چی گفتن؟ اهل قلم بود اما انکسیر میگه ادوارش و له مصنفات کثیره مفیده تألیفاتش همش زیباس مثل کتاب الشریعه مثل کتاب غرaba ماد حفستایش ستایش ستایشش میکنن در تعریف صاحب التوالیف سمعانی خطیب بغدادی امن الجوزی همه اینها تعریف و تمجیدش میکنن در تصنيفاتش وتاليفاتش. مؤلفاتي كدارجة شده مثل أخبار عمر عبد العزيز، أذ مشردة لكتاباتش أخلاق وحملة القرآن. إنه هم التحقيق شو هم تحقيقاته شامخوبة تحقيقة دكتور عبد العزيز قاري مثلا أخلاق العلماء دري. أخلاق وحملة القرآن. أخلاق العلماء هم دري. أدب النفوس الأربعون حديثا الأربعون حديثا يشرحها والكلام عليها. تحريم النرد والشطرنج والملاهي دار تحريمه قفتم. شطرنج نادرشیر در تحریم اینها تصنیف داره در بحث نگاه به الله در روز آخرت و صفات غرابا اینها کتابایی هست که از علامه آجروری تحقیق شده و چاپ شده از جمله مؤلفاتی که امام اجرری داشته و چاپ نشده هنوز یا مخطوطاتش ناقصه یا اینکه مخطوطاتی است که به دستمون نرسیده از جمله 80 تا حدیث داره کتاب 80 حدیثه جز فی حکایات عن الشافعی روایاتی از زمان شافعی رحمه الله یک کتابی داره نخ کرده کتاب از جمله کتاباش فرد و طلب العلم فضل و قیام اللیل و التهجد که الان این محقق اومده این کتاب رو تحقیق کرده و یکی از بهترین تحقیقاتی هست که رو این کتاب انجام شده تحقیق عبد اللطیف ابن محمد الجيلاني الآسيفي عبد اللطيف ابن محمد الجيلاني إن أسبحتا إن تحقيقاته بر إن كتابك داريميخوني أجمل كتاباتش الفوائد المنتخبة وممردة في فضلي أو في ليلة النصف من شعبان وابوصل المشتاقين مالفة تدغارها سنك نسبت به. أجري ككاسي ازنها نيمده بي ك اصل تصنيفش تاليفش روی بوده مثل احكام النساء اوصاف السبعة تحريم زنان النساء في ادارهن تغيير الازمنه التفرد والعزلة التوبة حسن الخلق الى اخر الشبهات فتن وغض الطرف وفردوس العلم فضائل الكعبة وقصه الحجر الاسود وقيام الليل غير ازن كتاب فضل قيام الليل وكتاب رمذات العماد كتاب التائبين وضع المصلي مختصر في الفقه مناسك الحج المناظره النصيحه به اینا تصنیفاتی هست که نسبت داده شده به ماجوری هیچی در موردش ما نمیدونیم اما این آجری که ما دربارش میکنیم و کتابش رو داریم میکنیم امام ابوبکر گفتیم که صاحب کتاب الشریعه با اون آجری که سوالات داره از ابو داوود قاطی نکنید اون ابو عبیدا ابو عبید الاجری که صاحب سوالات از امام ابو داوود اون کسی دیگر هست با این آجری قاطی نکنیم وفات امام اجری در روز جمعه بوده چنانچه گفتیم در سال 360 در مکه 96 سال عم کرده و تصنیفات بسیاری را از خودش به جا گذاشته الله رحمتش بکنه قبرش و قبرش رو نرارین بکنه درجاتش در در علیین بالا ببره و ما را با ایشان حش بکنه و جز رفقای محمد صلی الله علیه وسلم همه ما را قرار بده خب اما این کتابی که در دستمون هست کتاب فضل قیام اللیل چند تا باب داره؟ حادیث در اون ابواب گذاشته که انشالله بهش خواهیم پرداخت شکی درش نیست که نماز تهجد جزه آکدترین معکدترین سنت ها هست از سنت های راتب قبلی و بعدی معکدتره انشالله در زمن بحث بهش خواهیم پرداخت دستور الله به رسول الله صلی اللہ علیه وسلم به تحجده و گفته شده که تهجد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم واجب بود و من اللیل فتهجد به امر الله بر رسول الله صلی الله علیه و آله فتهجد به نافله و من اللیل فتهجد به فبر دیگر امت مستحب به این اقوال علما است که گفتن و برداشتایی که داشتن ما اون چیزی که برای ما مهمه مهم امشب خوندن این کتابه و اون احادیسی که در فضل قیام اللیل از رسول الله صلی الله و سلم مده و اون برداشت‌هایی که علما از اون احادیث داشتن خصوصا امام اجری که قبل از اینکه احادیس را بیاره میاد خلاصه ی در مورد اون باب صحبت میکنه و بعد میاد احادیس را یاد میکنه همین زیادی در بحث تهجد کتاب نوشتن مثل جنید کتاب التهجد راهم عبدالله ابن الجنید یا کتاب تهجد ابن ابي الدنيا كتاب قيام الليل المروزي محمد بن نصر وكتاب المتهجد يونس ابن الله بن مغيث كتاب التهجد ابو نعيم سفهاني قفتني أسبو زبتني شاقر دانا أبو بكر واجور كتاب التهجد وما ورد في ذلك من الكتب الصحاح تعليف عبد الحق اشبيلي وقيام الليل ابن الجوزي كتاب تهجد مقدسي عبد الغني زيادة تعليف تعليفات رهبان الليل که معاصره تصنیفات خیلی زیاده ده ها کتاب داریم در بحث تهجد و فضیلت نماز تهجد یا نماز شب نوشته شده امام اجری چنان چه خواهد اومد سبب تعلیفش رو یاد میکنه که ضرورت حال رو میبینه وقتی که سستی اهل زمانش رو میبینه میاد این تعلیف را انجام میده و این کتاب را مینویسه اگر علمای اون عصر اگر اهل اون عصر متکاسل یا تنبل بودند در تهجدشون اهل این عصر چگونه وسویشون بکنیم در باب تهجد الله المستع الله بندگان خودش را مورد رحمتش و برکاتش قرار بده ما ما را مشمول آن بکنه این کتاب شامل 48 تا اثر و حدیث وقتی گفته میشه اثر و حدیث یعنی حدیث از رسول الله صلی الله علیه و و اثر از صحابه و خبر از تابعین چه هشتا حدیث و اثر مصند از خودش دار رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه در اینجا نقل میکنه. بیسی یک حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم، هفتا از اون احادیث صحیحه، تاشون در صحیحینه، یکیشون در صحیح مسلمه، تا از این روایت ها حسنه، یعنی یازده تا روایت ها صحیحه، ضعيف هشتاست ولی که بیشتر این احادیثی که ضعیف بهمون رسیده مسندش به معناش یا به مفهومش احادیث دیگر داریم وقتی گفتم میشه زعیف فکر نکنید دیگه اینا ضعیف محزن و بهش اسناد نمیشه ان در ضمن بحث بهش خواهیم پرداخت دو تا حدیث فقط هست از مرفوعات از 21 یکی دو تا فقط هست که ضعف شدیده اون دو تا هم الان بگم اون نماز که بین مغرب و عشا هست یکیشون اونجاست خواهد اومد ولی مابقی یا صحیحن 11 تا یه طرف و اون 7 تا مابقی هم یا 8 در طرق دیگر بهمون با اسانید حسن و صحیح رسیده اما آثاری که در این روایت هست آثار صحابه 14 تا دا داریم 6 تاشون صحیحن و 8 تاشون ضعف درش هست. آثار دیگر مقتوع بر تابعین و ما بعد اونها آنها که بعد از تابعین بودن سه تا روایت صحیحه و دو تا روایت حسنه و 5 تاش ضعیفه بس این کتاب مهمه 20 حدیث از رسول الله صلی الله علیه و وسلم خواهیم خون در فضل تهجد و قیام اللیل چند تا حدیث 20 حدیث موضوع کمیه موضوع کمیه یا موضوع مهمیه درباره نیت میگه انما به بالنيه یک حدیث شما دارید در بحث نیت که این همه مهمه شما یک حدیث دارید در بحث تهجد 20 تا حدیث داریم تقریبا ما میتونیم بگیم 20 تا حدیث بر ما رسول الله صلی الله علیه و وسلم درباره تهجد و قیام شب خب اسانید متعددی داره این کتاب محمد بن خلیفہ روایت کرده همچنین سلام ابن سعید این نسخه ای که به دست ما رسیده سال 8 قمری یا 9 هجری با دست حالا چنانچه چنان قبلن بوده رسم بوده با دست خط نسخه برداری شده با علم ها همچنین بوده وقتی کتابی را از عالمی می گرفتند با سند می گرفتند حتی مباو روایت در علم مصالح حدیثی اجازه می دادن مثلا که آقا تو از من نقل بکنی این کتاب را با این اسناد اونم اجازه می بر نقل اون کتاب خب این کتاب ينامس نادش كبهم والرسيد هذا الله على محمد وعلى محمد.